و و مجمعین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اجمعين اللهم احشرنا جميعا مع الشاكرين وارحمنا برحمتك يا ارحم بحثی که در اینجا مرحوم استاد لع از بزرگان مطرح کردن و عملا الان در شیخ فوق العاده گذاره مسئله است که معروف شده به اینکه شهرت جابر است یا کاسر یا هر دو یا هیچ کدام عصر همین چهار احتمال در مجموعه کلمات هست اون چه که الان بیشتر مشهوره در الفنی معاصرین ما و رتبه مشایخ و مشایخ و ال مشایخ مرحوم نایینی دیگران بناشون به اینه که شهرت رو جابر و کاسر می‌ذارن در چه از, از معاصرین و غیر معاصرین که اصولاً بحثی از جهات سندی و رجادی در احادیث میکنن اون چی که براشون مهمه عمل اصحاب و ایراد کاری به این جهت حالا سند صحیح یا ضعیف نه بلکه غالبا ضعف اسناد رو به عنوان مثلا اگه یک مطلبی از اصحاب قبول نکردم یعنی ز... سرنم ضعیفه حالا به عنوان مایی مثلا ذکر میکنن نه اینکه این مسئله حساسیت خاصی نشون بدن بله. به خلاف مرحوم استاد که عبارت ایشون رو ایشون معتقلن خبر صرف خودجته و اعراض و یا عمل تأثیری در اون جهد نداره و توضیح عبارت ایشان گذشت. ما در این که و توضیح دادیم که ایشان نحوه استدلالشون به چه نحوی بود و خیال کمه مثلاق تبیان مثلا و در اون نقطه دوم که اعراض بود به عنوان که مثلا حجیتش رو از بین میبره خیلی توضیح زیاد درد بسمتی تو گم نداره. عرض کنم حضورتون که ما عرض کردیم این سنخ مسائل از مسائلی نیست که به نحوه کلی به این سیغه که ایشون مطرح کردن مفرح بشه اینا غالبا تاریخ دارن و حساب کتاب دارن خوبصور این امثال یعنی کلا و این مسئلن دارای تاریخ معینی نیست. این مسئله اعراض مشهور جابر یا کاسر عسکریم تا قبل از قرن هفتم در کلمات اصحاب مطرح نیست مثلا شیخ توسی یا مسافر ابن ادریس دیگران هر کدوم دارای مبنای خاصی هستند و این طور نیست که مثلا این مسئله رو ذکر کرده باشن که اعراض جابر یا کاسر بیاد بله این مسئله از قرن هفتم شروع شد و خصوصا بعد از اینکه علامه رضوان الله صلو علیه این استلاحات رو اوور فرض کردم کرارن و مرارن اولین کسی که در رجالشیه در فقهشیه این اصطلاحات رو هم در کبرا مطرف کرد و هم در سقرا علامه است ما قبل از ایشان ندارم مثلا فرض که ما داریم فرض فهرست شیخ توسی یا طریق شیخ توسی در مشهه ایشون توی آخر تحضی و آخر استفسار طرقشون رو به افراد نوشتن که معروف از به مشیخه یا مشیخه صدوق هم در آخر فقیه طریقش رو به افراد نوشته که اون هم بهش میاد مشیخه فقیه یا مشیخه یا حالا بین این دوتا فهم رو بین صدوق و بین شیخه توسی از این بحث نمیخوام باشن بر حضر اینی که اما اصحاب ما مثلا تا زمان علامه کسی در رکال نه، از بگه طریق شیخ طوسی تا فلان آقا ضعیفه یا تا فلان آقا صحیحه. یا طریق شیخ صدوق تا فلان شخص پس بکنید اول این تقسیم بندی که چهار قسم بشه ایشون شروع کرده کی یا حدیث صحیحه راویش امامیه عدل باشه یا حسن امامی باشه اما توثیق نشده باشه مندوح باشه یا موسطقه که غیر امامی باشه اما موسطق توصیف شده باشه و یا ضعیفه که فاقده این حالات باشه ارسان هم این تقسیم بندی و هم علامه آوردن برمان کبرا و برای اولین بار در رجال ما اولین کسی که این کار کرد تو خلاص طریق و علا فران ضعیفان طریق و علا فران صحیحان طریق و علا فران حسران ما قبل از علامه نداریم دقیق بکنیم کتاب شیخ صدوق میوفاد سال... شیخ صدوق سیسد سی و هشتاد و یکی حدود شیستد و نزدیک به این کار رو انجام داد. یعنی 400 سال فاصله شد ما بین اونه که صدوق نوشته بود تا اون ارزیابی و تقییم حدیث که این سنده ضعیفه 400 سال فاصله شد ما این شیخ توصی در تهدید را نقل کرده کرد شیخ صدوق هم در فقی اما تا قبل از علامه کسی نداشتیم ببینیم رواش شیخ سهی رواش شیخ الحسن روش صدوق صادوقان سهی هم کبران رو علامه او بود هم تطبیق را در فق علامه او یعنی حدود مثلا 400 سال 350 سال 300 سال یا برایشون دو تا مثلا 400 یا 500 حدود سی ست و سال دیویست سال بعد از مرحوم شیخ دیویست خورده ای علامه رضوان الله تعالی علیه این کار رو انجام داد این توضیح ما نداریم در فکر شیعه نداریم. الان خب در کتب شما راحت میخونیم در جواهر غیره سعیه و خلال لیکن این اصلا در کتب شیعه نبود اولین کسی که این رو عورد مرحوم علامه است. و حتی بعدها هم در همه کتب بود الان در همین کتابه سر همین مثلا تکرار شهید اول که بعد از علامه است چون اول شاگرد فخر المحققین پسر علامه است فخرم هم که خواهم پسر و شاگرد علامه در کتاب ایشون میگه لخبر فلان بله بعد بعدی وقضیه میگه و یوت انا و هاذر خبر مطعون فی اسناده اینطوری میگه اما باز هم ایشون با تعیین به کار نمیبره. بعد از علامه فارس که مرحوم ایشون محقق در کتاب معتبر، روایت نهارم که همشون که لخبر فلا رما رواه و فلان. یک نمونه مثال نه برای کسی که قبل از ایشان و کسی که بعد از ایشان تعبیر ندارند لصحیحت فلان، لکن علامه داره البته مرحومه محقق داییشان گاهی بحثای سندی میکنه اما اون کارایی که علامه خواهرزادیشون هست جامده و این تخصیم بندی و این اسطلاح رو به کار بودن این رو به کار نمیبرن پس در حقیقت باید گفت از قرن هفتم این کار در شیعه شروع شد این کار که بگیم این خبر صحیح هست لکن عمل لمیعمل به حل از ها مثلا این اصطلاح از اونجا عمل یا این خبر ضعیف هست لکن عمل به حل از ها مثل این قبل نبوده در فکر در شیعه و اون که آمده بعد ارز کردم در مذاهب اسلامیان تو اونجهی که من دیدم ندارن همچه مطلبی رو کلن ندارن که مثلا عمل مشهور جابر زرف حدیث باشه یا اراز مشهور مخصوصا که اونها روایت عن با سند بحث میکنن و از شد سابقا حباب شده که این ترکی قرائنی هم که اونها بیشتر میارن رو خود خبره نه روی عمل روی امر خارجی حالی مطلب روی توضیحی باید عرض میکنم انشاءالله تا خب پس بنابراین این مطلب پیش میاد که از قرن هفتم این تغییر در فقه شیعه پیدا شد در حدیث شیعه پیدا شد هر دور مثال زدیم در حدیث شیعه مثل خلاصه علامه گفت طریق شیخ صدوق رو فلان زعیفون آخر خلاصه ایشون تروح رو تقییم کرده زکرت رو الا فلان حسنون الا فلان زعیفون الافلان این کار رو علامه در رجال انجام رو قبلازی نداشتیم ما. تو فقه هم مختلف به نگاه به همینطور روش شیخ صحیل و شیخ الحسن قبلازیشو نداشتیم بخطو کنه خب از اون طرف هم مشکلم روشنه براتون دیگه اصحاب ما از قرن چهارم و پنجم، اصول کار رو مدربن کردن یعنی اصول کار اصحاب ما در زمان ام، از میمه های قرن اول تا میمه های قرن دوم حدود سال های 70-80 تا سال پنجام از اون نوشتارها ها کمتر دست ما رسیده باید جمع و جور بکنیم یه چیزای مختصری مثلا کتاب علا مثلا گفته شده یه چیز مختصری دست ما رسید بخش دوم ما از 150 که در بغداد میاد اون در کوفه بود تا حدود 300 از این زمانم مستقیم دست ما کم رسیده اما خب جمع جور میشه که سر پروتو فارسو نیمه سردار الرحمن ابن از سال 200 هم تا سال 400 تقریبا در قوم بعد از سال 320 از کلیه مکتب دوم بغداد تا 450 از این زمان دست ما رسیده این زمان مکتب درون بغداد و این هم مکتب قویی سنیه هم خود شهر بغداد شهر بزرگی بوده هم بزرگانی که اینجا بودن نه اینکه حالا مثلا عنوان داشتن واقعا مردمان جیل و قدیه. مثل شیخ مفید و شیخ صدوق و سید و مرتزا بود دیگرانی که از اینجا مثل سلار و دیگران که متاسرن اینا واقعا مردمان بزرگار و جیل و قدی اون که ما الان بیشتر داریم چه ها نزدیگه 90 است حاصل این مکتب دوم وقت داده اینا رو توضیحاتش گذشت و اصحاب ما در این مدت خب کارهای زیادی کردن ارزیابی کردن تقییم کردن رجال نوشتن فهارس نوشتن تعیین کردن کدوم کتاب قابل اعتماد نیست کدوم رجال مزن لکن در مقام عمل که نگاه میکنید حبر اون اصطلاحی که در رجال اهل سنت چون در اون زمان دیگه احل سنت کاملا رجال و حدیث و و صحیح و کاملا زیاد داشته نه اینکه کم ده ها بلکه صدها مصنف در حدیث و علوم حدیث و اینها تا قرم پنجم و ششم اینا شروع میکنن مصنفات خودشون در این جلد و کتب رجالیشون و ائمه شأنشون مثل یحیی بن و احمد بن حنبل و ابن عبیاتهام و الیش درجات دارن ابن حبار همه مال این زمان ها اون واقعا عمیق شهنند خب طبیعتا ما به اون عدد افراد نداریم به اون عدد کتاب نداریم به اون عدد نوشتار نداریم خب خیلی نویسدار ما نسبت به اونها کمه و مخصوصا که یه مقداری از نوشتارهای ما بلند به سررجال معروف شده در حقیقت فهرست سررجالم نیست فهرست حالا به هر حال این مشکل رو نمیدونم تصور کردیم اون مشکلی که برای اصحاب ما پیدا شد در همون قرن هفتم هم این بود که اگر ما بخواهیم با این مصطلحات پیش بریم توانیم میراث های قبل رو درست بکنیم خصوصا یک نقطه در نظر بگیریم خصوصا که غیر از این میراث های رسمی که به ما رسیده از کافی قیل فقی مقدار زیادی از میراث های اصلی هنوز موجود بوده مثلا میراث هایی که فرسون مثلا کتاب ابن فضل هنوز متعارف بوده، کتاب حلبی هنوز متعارف بوده، کتاب حری هنوز موجود بوده. در اصل مشکل چی بوده؟ چون میراث‌های اصلی اصحاب ما موجود بوده، مقایسه کردن و دقت کردن آسانتر بوده. اما در زمان مثل محقق و مثل شهید اول و علامه از میراث‌های قبلی خیلی نادر بوده. خیلی نادر کتاب های بسیار کمی در اختیار معتبر بوده از میراث‌های قبلی ما مثلا من توی نسخه خودم تو مقدمه‌ش بعضی یک جایی که ایشون هم در ذکر شهید اول هم مرحوم محقق نوشتم که مثلا صفحه فلان اسم فلان کتاب بوده حالا شهید اول نسبتاً بیشتر اسم بوده حالا چون نمی‌خوام وارد این بحث جزئیات بشه خب عده زیادی رو عده از کتب اما خب این میراث‌ها زیاد نیست یعنی در حدی نیست که بتوانیم کافی و فقیه رو با او ارزیابی بکنه در اون حد نیست من این همین خب اشکالات سندی هم دارن چون قالبش معلوم به نه وجاده هست. این مشکل دارم اگه همون اجازه عامی که داشتن بایلا مشکله. مرادم اجازه عام اجازه عامی که محقق به شیخ توسی داره. شیخ توسی هم به این کتب داره. اینطوری من اجازه عامی کنیم. یه تلکیق اجازه بکن. به هر حال این نکته رو خوب دقت بفرمایید پس بر این طبیعی بود که مشکل ایجاد بشه چرا چون با این معیار های جدیدی که علامه گفته بود ایده از اخبار طرح میشدن می گفت این ضعیفه اینا فتحی واقفیه کذاب مجهول مجهولش در درجه از ضعف بود لکن خب اصحاب عمل کرد بود روشن شد پس مشکل در حقیقت این بود اصل مشکل نه اینکه اونها ملتفت نبودند، ملتفت بودن که اگر بخواهیم اون راه رو پیش بریم با این مشکل برخورد میکنیم این مشکل بعدها در بین اصحابی که بعد از محقق و علامه آمدن البته بعدهاش تا دو سه قرح، سه کلمات این دو نفر یعنی محقق و علامه محقق رو قالب میتونی اول قاسب یا شیخ نجم الدین تعبیران ما میگیم محقق این مراد محققه حلی صاحب شرایه <تصفيق> و قال الفازل می گفتن. قال الفازل جمال الدین مراد علامه است حالا ما ها میگیم علامه و وحبه بودن فازل جمال الدین خب این بزرگان تا مدت ها مثل که چطور در زمان ما نام جواهر با عظمت برده می که جواهر تا مدت این کلمات این دو بزرگوار محقق و علامه مهور بحث های علمی بود این محور حساسی بحث ها کلماتی بود که محقق و علامه جمع آوری کرده بودن و نوشته بودن در کتاب هاشون در حقیقت ما بعد از این دو بزرگوار یک حالت همچین خیلی مستقیم مستقیمه یک نواخ نمی بینیم مثل صاحب آلم یا مدارک به حدیث حسن و سعی عمل میکنن و هم خیلی به اعراض ندارم خیلی جهان به اجماع تمثلت میکنن افرادی مثل شهید اول و خود محقق بیشتر به شهرت فتوایی نگاه میکنن به شهرت عملی کسانی مثل شهید ثانی مثلا صحت و مثلا که صحیحه ضعیفه پلا لیکن اعراض روش حساب باز میکنه و تردریجه با ظهور اخباری ها دیگه طبع اخباری ها میشه که بعد از زمان علامه اخباری ها که حدود مثلا سالهای هزار مثلا بگیم سال بروز و ظهور این هاست یه مثلا فرسون 7-7 سال, سال بعد از دولت صفویه بعد از تشکیل دولت صفویه اخباری ها مثلا مولا محمد امین استرابادی که متوفای هزار حالا سی و سی حالا فرسون مثلا سالهای شون افتارشون تخشه. اخباری ها دیگه رسمن جلوه این میستن و تقریبا یک مکتب منسجم رو ارائه میکنن یعنی اون که در معابل تقسیمات علام رسمن میسته اخباری و تفسیر منسجمشون هم کتاب مشهوره از خواهر قرائن شواهد خوندیم عبارات مرحوم صاحب سال وسائل خوندیم ایجا ادعای مجموعه قرائن و شواهدی کردن که اون در این کتاب مشهوره معروف هست محسن در کتب اربعه متفاوته این دیگه منسجم شده داره که اولش یه کمی ناسنجامی داره و انصافا هم اصولی‌ها بعدیان همینطور باخه مبانیشون مختلفه اما اخباری ها کل اون تشکیلات رو به هم ریختن کل اون سری و سریم و ضعیف و همه اون اوزار رو به هم ریختن معیار هم دادن و رجوع به کتب مشهور روايات مشهور کتب روایات و مراد این ها از کتاب مشغوله دقت بکنید کنید شهرت نه به لحاظ شهرت مؤلف شهرت نسخ کتاب به صحت انتصاب کتاب به معلف. مثلا بودن فرحال رزا خیلی انتصابش روشن نیست مثلا فرشن عوال الله عالی خیلی روشن نیست اما کتاب های اون کتاب های که شهرت انتصاب داشتون رو قبول میکنند اگر یکی از کتب صدوب بود که انتصابش مرمونه این نسخه خطی بود. بودم اعتمال نمیکردم. به کتب مشغوره بروشنه که وضعه کار رو ترتیب برنامه کار اخباری ها انسجامی دادن. تا از اخباری ها مثلا مرمون وحید و دست الله وحید بهبانی و علمای بعدی سعی کردن در مقابل این کار رویستن لیکن مشهورترشون از زمان وحیدم تقریبا همین شد. که سه حت سند رو مثلا چون خود مغموم وحید الله نفسه مثل مغموم علامه تحقیقات رجالی خوبی داره یعنی اصولی ها اضافه بر بحث های اصولی وارد تحقیقات رجالی شدن چون من ارز کردم یک مشکل دیگری که در رجال ما بود اینو خیلی توضیح شما فصل ارز کردم اون مقدار که کتب رجالی ما بود وافیه به حدیث اهل بک نبود یه مشکل بزرگ این هلا شما مثلا میگنم اصول خمسه رجالیه معروف اینطوریه اصول خمسه یکی فهرست نجاشیست که این فهرست اصلا رجال نیست دوم فهرست شیخ توصی که اینم فهرست سوم رجال شیخ توسی ایشون به استثنای یاد اواخر رجالش و الا اصلا در اصحاب امام حسن امام حسن از از فجال حضرت سادیت ها مداره. خیلی کم توصی و تضعیف داره اواخرش کم بیشتر داره اما مثلا در اصحابه از یه سه هزاره خورده عنوان در این کتاب آمده خیلی کم قفت سقتان و چی بیشه حکمی شده مجبور بودن دقت میکنه یعنی ما مشکل بزرگ دیگری هم که به حاضر فرض یکیش هم رجال کشی که خیلی غلط قلوت بود یکیش هم رجال ابن قضایری بود که اون اصل انتصابشش شناش محل کلام بود یکی هم رجال برقی بود کنم فقط اسماع رو آورده یعنی ما به لحظی اینا هم همه تو قرن پنجم بعض یا چارم رجال برقی ثومه رجال برقی چون خواهد اسم آرده لیسته مثلا اصحاب ساده و با کازمی با. که که لیسته رجال کشی قرن چارمه کار شیخ و ابن قضایری قرن پنجمه و ممهون نجاشی ما مثلا در کتب اهل سونر قبل از این تاریخ کتاب های مفصل در رجال از مثلا و تعدیل ابن نبیاتم از کل کتب رجالی ما رو به اندریزه با هم یک جا چاپ بکنم به نظرتون کتاب نمیشه؟ مفصل یعنی کتاب‌های مفصل ائمه شأنشون در این زمان ها قرن سوم و اینا از احمد بن حنبل ابن نوبیه و احمد هستن. واقعاً هم خب بعضیشون خیلی کار نمیشه این کار کنه. ما بزرگانی که دارن در این شأن اینا از کردم از سال 150 تقریبا شعبه ابن حجاج بصری وارد این کار میشه. خیلی نهایتا سالهای 200 300 اوج کارهاشونه و خیلی کارهای بزرگی انجام دادن. اینو قبول کردم که خب البته اونام روایت زیاد داشتن، روایت زیاد داشتن. قبوله اما ما هم متاسفانه عرض کردم این مثلا بعدها در قرن هشتم، هفتم و هشتم النامه یک مجموعه ای از کل این اصول خمسه رجالیه برداشت نمیشه یک جلد شده خلاصه خلاصه اقوال فیلمه دوش ها خلاصه اقواله النامه یک جلد نسبتاً کوچیکم هم حساب میشه این مجموعه ای از اون کتب رجالیه قبلی برقی رو نداره مضافاً یکی دو تا هم زیادی داره رجال ابن عوضه نهم نه میکنه جال عقیقی نهم نه میکنه در حضر غیر از این هایی که در ما بوده از جای دیگر نهار میکنه که اونا هم با ذره با تمام این احوال یک گل میشه. این خیلی راحته. شما الان اگر بخواین روایات احل به تو با رجال احلام مثلا میمون که خلاصه افکار قدم هست به ارزی چیزی در حوض 20 درصد روایات بررسی در میشه. 80 درصد روایات میمونه. میمونه چیز میشه مشهور ضعیف؟ شاهده بازی است که مرکوم مجلسی رضوان الله تعالى مرا اتول رو بر اساس همین ارزیابی علامه نوشتن، از چیشون چون اخباری میگه ضعیف، میگه ضعیف، آن عالم مشهور، مشهور از زمان عالم، از زمانشون که در آن یاد، در آزدهام، از آزدهام دادی، از آزدهم ده به از حدودشون 2000 حدیثی که در کتاب کافی است، حدود 9000 حدیث روشون ضعیف فصل کرده آبا کتاب کافی با این شهرتش و با این بزرگواریش بستش اینه فقط علیه فردنه ها تفعلله دیگه حساب کنید برایم شده عملی و حساب اینها خیلی نسبت بالاست یعنی بیش از نصف کتاب رو ایشون برداشته خب این که گفته زعیفون یعنی رو همون مبانی قدما یعنی قدما مراد من علام بذن خب با این عرضیابی علامه خب این مشکل بود دیگه این نمیشه این کار کرد پس دو سه تا ما مشکل داشتیم یکی بحث فقهی ما بود یکی خود بحث رجال ما بود ما از کردیم علامه هم تو رجال این تغییر هم تو فقه هم توضیح شو کردیم ما به هر حال در رجال و مشکل داشتیم یعنی این رجال ما به این روایات ما نمی کاره رضایی که از کارهایی روی که مرمون وحی نسل جدید ما قالبا رجالیون ما تا تا فی ما بعد اعتماد فراوانی روی علامه داشتن تا دا این معاصلین ما مثل فرسی مرموم موقع نیرد قبلی که فراوان خیلی سنگی مثلا مرموم سال وسائل جلد آخرش ایک رجالی هم داره ایشون مثلا سقهت ذکر زکره های علامه و نجاشی ذکر های شیخ و علامه امده اعتمادشان رو روی علامه توسیقات علامه بعد از اخباری ها کار جدیدی که در ما شروع شد غیر از حالا تأکید شد این عمل مشروع اینها کار جدیدی که شروع شد کارهایی بود که مرحوم به حد گهد در رجال شروع کردن اما تو این کارها روز به روز رشد پیدا کرد یکی از قسمتهایی مهم این بود که سعی کرد اده زیادی از مجاهی رو در بیاره خب ایشون بودن بعدها حاجی نوری بودن اده بودن این که نسبتاً به اول مروز زیاد یک حوض‌های کر بزرگی درست که هر کی مجهول بود تو این حوض انداختن ترتوی در بعد توصیف کردن خود مرحوم استاد آقای خویی مثلا وقتی که قالب کامل زیارت خوب یه همچین یعنی مجهول رو در هم رن هم ایشون رو کامل زیارت توصیف فرمودن و راهایی که بعد دیگران رفتن مشایخ نزدش شد اسمش توصیقات عامه این کار رو مرحوم وحید بهبهانی تقریبا تا اونجا یه ما خبر بده تقریبا به یک معنا البته این شهیدسانی هم تو حواشیش بر خلاصه داره توصیقات جه اما در اون سطح بالا چشمگیرش باید گفت به وحید بهبهانی مثلا حاجی نوری مثلا تو یک حدی استاد مثلا خیلی زیاد نیست گفت با حاجی نوری حاجی نوری خیلی توزه کار بزرگی درست کرده که خیلی تشویق آره تو کتاب‌ها هم مؤلفین و هم مؤلفه مؤلفات هر دو تو این خاتمه، اول خاتمه کتاب‌های بسیار زیادی رو که حساب و سؤال اعتماد نکرده، ایشون سعی کرده بیا راهش اعتماد بکنه. علی حالا اینو خوب دقت بکنید. پس ما در حقیقت بعد از علامه به این مشکل برخوردیم. و این مشکل هم همین بود. هم تو رجال مشکل داشت، هم تو فهم مشکل داشت. علامه هم در هر دو بی کرده بود. هم تو رجال داشت، هم می‌کرد تو فهم. تو هر دو اینجا اشکال کرد چون این ارزیابی ها در قرن هشتم بود بعد از این که کتاب اصحاب نوشته شده بود چهار قرن قبل، مثلا کتاب کافی نوشته شده بود کتاب صدوق نوشته شده بود سه قرن قبل، کتاب شیخ توصی دو قرن قبل نوشته شده مشکل ایجاد کرد من راه های مختلفی که رفتن یکی از راه ها این بود حالا چرا این شد من رو مست... در یک قسمتش میگه چون به تباییون ما که تباییون در عبارات اینا ندیدیم حوال هم دماغار ارز کنم که اونی که به ذهن ما میاد اینا مجموعه کارهایی بوده که شده یکیش به ذهن ما میاد چون ارز کردم این دو بزرگوار محقق و علامه خیلی تأثیر گذار بودن محقق تو این مسئله به اکس علامه اصلا حجت رو خبره مقبول میدونه خوب دقت بکنید تیم من برای فائده مطلب واسه یه مقدار عبارات در رساله شیخ انصاری اومده من عبارتشون کامل میخام ایشون در کتاب معتبر چه میشن همین کتاب و اصول مستقل دارن معارج درکین در معتبر رسمو در زبان یک دوره مختصر اصول رو توی مقدمات فقه مینوشتن همین معالمی که شما میخونید مقدمه فقه ایشونه ایشون نوشته ایشون اینی که شما در اصول میخونید این باید, باید نمیشن معالم او اصول نه بعضی مثلا اصول معالم دین این بخش اصول اسم کتاب معالم دین اینکه کتاب فقهیه چه هم هم کده فقه ایشان یه جل نوشتن بعدن روی فوق کردن تهارت بعد از این اصول این رو به عنوان مقدمه نوشتن مقدمه برفق در حوضه ما این مقدمه محل اعتنال را گرفت و باش مطالعه بود کارها با این انجام گرفت. به هر حال مرموم محقق هم در مقدمه معتبر نه در شرایط چون معتبر جنبه استدلالی هم داره یه دوره تقریبا خیلی اجمالی سه چهار صفحه اصول نوشته بعد سه صفحه نوشتن بعد در صفحه 6 این چهار مقاله زار هم به خوبی هم شده چون نوشته نه واژه نه لگداشتی میواد ایشون یک مسئله ای رو به حجه خبر واحد اختصاص داره من این ایشون رو به خاطر خب فر... ایشون دایی علامه هست استاد ایشان شما الان من قضی علامه را ارز عرض کنم هست برای ایشون در حدیث چه کار میکنه مرحوم محقق قدس علامه هست ایشون اول میکنه افراد حشویه حشویه همون اسطلاحیست که ما میگیم افراد ظاهر بین ظاهر پرست افراد به اسطلاح خب اخباری افرادی که خیلی مثلا دقت ندارم البته زفت کلمه هم حشویه شده هم حشوی درست همینه حالا شاید مثلا مثلا این افراد خیلی ظاهربین نیان یعنی افراد کم عقلیان یعنی مثلا اقرطل حشییه فلعمل به خبر واحد حتی قادول کل خبر اینا هر خبر خب میگه توی جمله از اخبار داره که پیرانا رو دروغ میگن بعد میخوای تو با هم نمیشه داره خیلی خوب. من واضحه بحث بعدیش میشه بله رغتسر بعضون انها دل افراد بعضی اینقدر جلو نرفتن تا كمتر شدن فقال کل سلیم سندی و به این شبیه رئیس که بعد علامات به خراریشان سلیم س... نمیگه سلی سلیم سلیم سندی و به و ما و ما علم بعد ایشون رد میکنه ایشون میگه درسته ممکنه یه کسی حتی بگن کذابه اما کذاب که دوامن دروغ نمینه تمام احوالش صد درصد دروغ این توش هست و ما علم ان کازه و قدیل سق و الفاسقه قد يسلك نمیشه گفت که حالا فقط سلیم المسند ممکنه سلیم المسند نباشه اما قبول بکنه و لم يتنبه عن زاده که تعنن فی علماء شیعه دقت بکنی یعنی کار رو که بعد از سرخاهره ایشان انجام داد میگه این موجب طن علمای ماست و قد هم سلمظهر امن از چرا؟ از مصنف ایلا و هوه به خبر ما داریم به اضافه بخونه به ال به خبر از ما موسننف ایلا موسننف به خبر المجروح خبر واحد المعدل این همون مسئله به اصطلاح عمل مشهور جاوره میگه اگر ما این حرف بزنیم این هرشیست که بعد تصبح خوهر ایجان زده ما اگر این حرف بزنیم قدر خونه فیلی مذهب رو شن شد نبلز اینکه ایشون بخواد از رو بیدیم و افرت آخرون فی طرف رجل خبر از اون طرف هم یه نه اصلا خبر حجت نمیده به طور کلی حتی از احال استعماله و اقلن و نقلن منصوب شده به ادهی از معتدله و عقلگره ها که اصلا استعمال و حجید خبر محاله. عقلنم محاله. لَقْتَسَرَ آخَرُونَ فَلَمْ يَرَوْ عَلَعَقْلِ مَانَعَنْ لَاكَنْ نَشَرْ لَمْ يَعْذَنْ فِلْ عَمَلِ بِهِ یقیت که به خاطر اهمیت مسئله خبر واحد. این رو یک بحث مستقل. این اجمال اقوالی بوده که معهوم محقق نه اقوی میکنن. بعد از این که ایشو میکنه و کل دهل اقوال منحرفتان انه سنن سنن راه راست مستقیم از سننه میشو خوند لیکن زبط بیشتر سنن و ترس و اقرد یک حد وسط ما بگیم حالا مبنای علام ببینیم مبنای محفظ فما قبل اهل اصحاب هم چی که اصحاب قبول میکنه او دلت القرائن و علا عمله به اصلا مسئله سند ایشون مطرح نمیکنه. کنه قطعیق فما قبل حل او دلت القرائن و علا عمله به از کردم اما الان هم تو زمان ما از دیازم که آنین بحثای رجالی می همه رو بزید دور راه همینه هرچی که اصحاب قبول کرن قبول کرن چون پرتن تر, تر میکنی نیاز به هیچ بحث دیگه ندارند. این خلاصه اردنان محاکمه مرزدار مهیم نشده و ما ارزل و هاوانه او شد و هر کی که شاز باشه این شوز در اینجا به لحاظ عمل ما را. یا ارزل از یا شاز بود یه جی به تراهو اینو با کنیم. اتراه از باعثه افتعال اینجا یجب زوج اون وقتیشون اقده از وجوه رو نقل کرده من جمله این که خبر سقه مفید زنه خدا هم ولا تقب ماله سلکه بیره اون عدله رو برده است در شده برده هست بعد ایشون برده ایشون نقل میکنه بعد مفید زن هم نیست بعد اون روایت پیغمبر رو نقل میکنه منعنا بله و این غیلی ای که مفید زنده منعنا بله افادته او از زن لقوله صلی الله علیه و آله ستکس و بعدی القالت و قاله علی دروغو دروغو علیه قاله علی دروغو ف اذا جاکم انی حدیثون ف ارزوه علا کتاب الله العزیز ف این وافرهو به و الا فردوه و خبرهو صدقون ف لا فلا خبره من هاذ القبيل الا ويحتمل ان يكون من القبيل المخزون من سابقا هم اشاره کردم این روایت در تاریخ ما به طریق معتبر آمده اما در طرق اهل سنت ثابت نیست و این هم شاید یک چیز دیگری مراد بوده ست اکسوه بعدی القالبه الا سبوت این کلام امرسولو با این مفتن خیلی مشکله بعد ارز میکنم جای دیگه یقال حالا خبر واحده لعنان نقول ادا کان الخبره حجزن فالا اهدال اخبار و این لم یکن حجزن فقط بتر و لا آملتون دل اخبار و این اشاره به کلام شیخ شیخ توسی که ادعای اجماع کرده و عمله ها حجتون لعنه نم نعذالک قبول نداره که اصحاب امامی خبر بخبر فه این اکثر هم یرد دلخبر به انهو واحدون و به انهو شازون فلول افتناده هم معل اخبار ایشون میگه اگر خبری او و عمل کردن نکته داره باش، قرینه باشه فلاولا بله استناد هم معل اخبار الا وجه دقت کنید خبر رو تنها نیست تزی بله عمل به ها لکان عمل هم اقتراح ها عمل باطلی باشه و ها دا لایوان نوبل فرقت ناجیه و چیزی اندهما عدم ظفر است به تائن و المخالف به اگر مخالف نبود عمل میشه لا بله فلعل ما عدم الوثوق على التائن والمخالف له یتيقن انه حق اگه مخالف نبود یقین این یقین مورد یقین و عرفی است حقو لاستهالت تمادل اصحاب عل القول الباطل و خفاء الحق بینهم خیلی بعیده که اصحاب ما دنبال باطل برن اصرار به باطل داشتن تماد یعنی اصرار انسان بکشه خودش دنبال باطل بله و اما معل قرائن خوب دقت بکنید این عبارت مهمی چون دیدم عبارات استاد رو خوندید ایشون گفتند و اما معل قرائن فلا انها حجت بن فرادها خیلی عجیبه چون قرائن به تنهایی حجت هستند فتكون ودالتا على صدق مضمون الحدیث خب اگر قرائن به تنهایی حجت شده حدیث میارید و یراد به احتجاج به حدیث از تاکید دقیقاً چی شد؟ این ذهنیت ایشان با ذهنیت آکویی رو مقایسه بکنیم یک وقت بودش یک مجموع دو سه دقیقه به هم پروست کردی آقای خوبی میفرانده خبر سرقه حجتان فی نفسه اعراض حجت که نیست نمیتونه حجت بردار دیروسی تو خوندیم ایراد یا خبر زعیف لیسه حجتان فی نفسه عمل هم لیسه حجتان فی نفسه ضم زعیف به زعیف مفیل چیز نمیشه حجت این دیروس خوند به مرحوم عکس ایشانه استبدال ذهنیته و من همیشه ازم کنم که در ذهن اون گوینده قرار بگید که اینجور درست محقق عکس ایشانه میگه قرائن خودش حجته این رمیمه به خبر میکنیم برای تحکیبه یعنی مردم مرحوم آکوی خبر سقه حجته اعراض نمیتونه جروعشه بگیره بغط بکنیم ایشون میگه نه اصاسا خبر دین از حجت نیست اونه که حجته قرائنه دقیقا خلافی شد این قرائنه که حجته این قرائنه حجته با خبر تأکید میشه پیلی این دقته مهم فلعنه این قرائن حجتون بین فراده ها چرا مرحوم صاحب محقق میفرم صاحب شرایم حجتون بین فراده ها چیشوان ما قبل حال اصحاب اقدلت القرائنه ها علیه قرینه اینه نه خبر آل آه خود تو زهنه که خبر سقه حجته فتکون و دالتن علا صدق مضمون حدیث اون قرائن میان این حدیث رو تأکید میکنن و یرادو بالاحتجاج به ات تأکید حالا ایشون نوشن یرادو بالاحتجاج به خبر از تأکید ممکن شما چیل دیگه اضافه کنیم بگید قرائن شبیه دلیل لبی هستن اگر قرائن آمدن بر خبر بعد از اینکه خبر رو قبول کردیم خبر میشه در این لفظی به گفت اکی شما میتونید در اینجا روشن کن پس شما میتونید در اینجا همین حرف محفظه قراردین که مبنوی ما همینه قرائن رو قبول داریم خبر رو هم قبول میکنیم وقت نتیجهش این میشه؟ که خبر اگر معاییت شد به قرائن اون خبر حجت میشه اگر خبر حجت شد دلیل ما میشه لفظی یعنی به اطلاقش تمسک میکنیم اگه مفهوم داشت منطوق داشت بهش تمسک میکنیم اما اگر ما باشیم و قرارم دلیل میشه لبیم این نکتر یه فاتح از مرحوم محقق با دلالت و یراد و بل به از تاکید به نظر ما نه یراد و بل به دلیل لبی ما بشه لفظی اون نکاتی که در لحیل لحظی هست و فرقی که با دهیلو بیدار بعد ایشون فعلای لولم یکون خبر واحل حجه لما نقل برای ما نقل نشد نه انا ننقض داله که به نقض خبر من عرف فسخوه و کفروه و من قدرف بخ... به وضع الاخبار کسایی که جعال بودم وضع حدیث و رومیه بالغلوب و بالاخبار اللیتی استذر لوبه فل... این جانشه بحوث علمیه بحوث علمیه مرادشون بحوث علمیه یعنی اموری که مسائلی که علم درش معتبره علمیه نمونه حوضه علمیه ما بحوث علمیه یعنی مسائلی که درش علم معتبره کت توحیل ول ول جواب و ولجواب و فیل کله واحدان این خلاصه پس کردیم کردین چی شد به ذهن ما میاد که این نظر محقق قدس الله نفسه که الان از که حدود تو زمان ما من از ازفردی اشیلم اصلا میگن ما حرف اون همین ما به خبر هیچ کار نداریم صدع زعیف صحیح هر چی میخواد باشه ما عمل به اهل اصحاب قبول میکنه علامه میعمل به اهل اصحاب قبول نمیکنه همین رایه که محقق اصلا خود این وقتی مرده البته ما عمل به اهل در کلام اینا غالبا روایتی که عمل به اهل اصحاب یکم با علامه فرم محقق فرم محقق میگه نه اون فتوایی که قبله اهل اما اونی که قبول نکردن از خواب اگر اگر دلالت کرکین قبول نکردن اون رو تعریف میکنیم این مبنای محفظ با مبنای علامه که صحت سند بود این منشع شده خده ای فیما بعد هم صحت سند نگاه به هم عمل اصحاب رو دقیق بکنید هم صحت سند رو حساب بکنن چون همز کردین کاملا معلومه در عبارات متأخرین این دو بزرگوار جایگاه خاصی دارن با قول خودشون شیخ نجم الدین و شیخ جمال الدین و جمال الدین جمال الدین علامه نجم الدین محقق بین این دوتا نظر به اینجا منتهی شده که غالبا معتقد به این شده اگر خبری مورد عمل اصحاب باشه به با عنوان درین لفظی قبولش بکنین اگر سردشم هم ضعیف باشه با عمل اصحاب اینجا بار پیدا بکنه و اگر عمل نکردن قبول نکنیم بلا سند سنگی باشه این خلاصه عواملی که ممکن در اینجا تصابر بشه عوامل دیگر هم اشانت هر ده هست